وإذ قال إبراهيم ربيج عن هذا البلد آمنه وجنبني وبني أن عبد الأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد ما توحيدك شروك عاردين. هردرس ما شهادات الرو. درس, درس ماها در توحید دو همش پیرامون شهادت شهادت و گواه ما بر یکتا بودن خداوند بوده و قسمت بعدیش بر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا است، پیام‌آوری بوده که از طرف خداوند مسئولیت داشته که وحی خداوند را بهمون ابلاغ بکنه. درسی که امروز داریم پیرامون فرموده خداوند قل اللهم مالک الملک توتی الملک من وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فبردگار تو که مالک آفرین مالک آفرین اندهستی همه مخلوقات به دست تو هست هرگاه که بخاهی ملکی پادشاهی از دست من تشاء میدهی به هر وتنزع الملك من تشاء به هرگاهی که اون ملک را بر میداری مالک کل خداونده خداوندی که مالک تمامی پادشاهان هست و تو عز منتشه و تو منتشا. هر کسی که بقاهی از می‌دهی، میدهی و هر کسی که خداوند بخواهد ذلتش میدهد بیاد که الخیر انکه على کل شیء قدیر همه خوبی ها پر بردگارا به دست توست و تو بر هر کاری قادر هستی طول جل لیل النهار و طول جل نهار فی اللیل شب را با روز می پوشانی و روز را با شب می پوشانی به دست توس روز و شب به دست توست بر بردگارا و تخرج من المیت و تخرج المیت من الحی و همچنین زنده کردن و میراندن اشخاص که کی بیمیره و کجا بیمیره و چطور بیمیره همش به دست خداونده و ترزق منتشب و بغیر حساب و به کسی که بخواهی بدون حساب و کتاب می دهی. رزق روزی دست خداونده پس خداوند مالک کله همونطور که خداوند آفریننده هست. و خداوند است که رزاق است رزق و روزی ملک دستی کسی جز خداوند یک تا نیست چون او آفریننده هست. چون او امور را تدبیر میکند و تنظیم میکند ما اگر بر بگردیم به قصه های قرآنی قشنگ به این مطلب پی میبریم ما نگاهی بکنیم مثلا به فرض مثال اگر ما نگاهی داشته باشیم به قصه فرعون که اون شخصی که اومد ادعای خدایی کرد انا ربکم رب الاعلا گفت من پروردگار شما هستم اونم خودش میدونست که پروردگار نیست میدونست فستخف و قومه اومد اونها را فریب داد اونها را یک انحراف ذهنی و اونها داد خلاف حقیقت بهشون گفت همانطور که خداوند از فرعون و آل فرعون و یاد میکنه که یقین داشتن به اینکه پروردگار یکتاست و اونم کسی هست که بالای آسمان ها هست قبول داشت که خودش بنده هست نه خداوند چون باید بمیرد چون باید بمیرد مخلوق است و میمیرد اون کسی باید پرستیده بشه که همیشه زنده است الله لا اله الا هو الحي القيوم خدایندی که حی و قیوم است همیشه زنده است و همه چیز به دست اوست او باید فرسیده بشه اون کسی که نمیخوابت لا تاخذه سنتون ولا نوم نه چرت میزنه بدن نمیخوابت ولی فرعون میخوابت ولی فرعون میاشامد و میخورد بنده هست. خالق نیازی به غذا نداره خالق نیازی به آب نداره نیازی به خواب و استراحتم نداره خالق آفریننده هست. همه چیز به دست اوست و خداوند در فرعون یاد میکنه و بها واستيقنت انفسهم جحود کردن انکار کردن در صورتی که قلبشون یقین داشت که اونها خالق آفریننده نیستن آفریننده کسی دیگر هست که باید اطاع شود. بله خداوند خاص به ماها نشون بده که کل اراده, اراده ها تمامی اراده ها تمامی امور به دست اوس فعال لما یورید هست خداوند هر کاری بخواهد انجام میدهد فرعان ادعای خدایی میکند میآید. می که من را بپرستید من پروردگار شما هستم خداوند بهش مهلت می و این مهلت خداوند درش حکمتی هست فرعون خوابی می بیند بعد از اون که اون خواب را می میرود می دنبال کسانی که این خوابش را تفسیر کنند اشخاصی میان که خوابش را تفسیر کنند میگوید ای فلانی این خوابی که من دیدم تعبیرش شیه اون مفسر میگوید. که فرعون خداوند چنین قضاوت کرده چنین خداوند نوشته برای تو که کسی بیاید این ملکت این پادشاهی رو نابود بکنه فرعونم که پادشاهی خودش تکبر داشت و میخواست پادشاهی خودش رو حفظ بکنه حب دنیا بر, بر او غلبه کرده بود فکر کرده بود که هرچی خوشی هست تو همین دنیا هست غافل از اینکه آخرتی هست اومد به خاطر اینکه ملک خودش پادشاهی خودش رو نگه بداره و این دنیا رو بر آخرت ترجیح داد اومد دستور داد که تمامی اشخاص کشته بشن اون نوزادانی که به دنیا میان تمامی اون نوزادها سر بریده شوند. این نوزاد این نوزاد اون, اون نوزاد اون مرد و مرد دیگر هیچ کسی رو رها نکرد، همه را کشت بله اون شخص جبار و متکبر اون شخصی که یک ذره رحم در قلبش نبود اومد کل اون اشخاص اون مردان را میکش و زنان را نگه میداش زنده نگه می‌داش. بچه ای نوزاد بچه ای که طفل معصومی که هیچ گناهی نکرده بود اون طفل بیگناه را میکش بقاطل چی؟ به که میترسید یک روزی ملکش نابود بشه پادشاهیش نابود بشه ولیکن خداون فعال لما هست اون چیزی که با قاحت خداوند میشود. فرعون سر سرنوشت خودش را اونطوری که خودش می خواهد رقم بزند. خداوند طوری دیگر نوشته. خداوند طوری دیگر میخواد رقم بزنه. سرنوشت سر فرعون و آله فرعون. اون کسانی که از فرعون تبعیت کردن پیروی کردن خداوند یک چیزی دیگر رو برای اونها نوشته. بله فرعون میاد بچه ها را که میکشد بعد از اون خداوند به این اینکه یک برنامه ای داشته برای بشریت خودش به خاطر اینکه اون گناهکار اون کسی که تغیان کرده عقوبت بشه خداوند پیامبری را میفرسته به سوی آل فرعون تا اینکه دیگه روز قیامت بهانه ای نداشته باشن تا اینکه خداوند وقتی که در عذاب جهنم میخواد او را بسوزاند دیگه نگوید که من عز داشتن چون اون کسانی که معزورا خداوند اونها را عذاب نمیدهد و ما معذبین حتی حتى نبعث رسول، عذاب نمیدیم تا اینکه پیامبری را بفرستیم فرعون را خداوند نمیخواد عذاب بدهد تا اینکه پیامبری را بفرستد و به او بگوید و به او هشدار بده خداوند موسی را میفرسته خداوند فعال فعال هست لما یرید یعنی اون چیزی که می میشود خداوند خواست که پیامبری را بفرسته به فرعون خاص که ملک اون پادشاهی فرعون نابود بشه تا اینکه درس و عبرتی بشه برای بشریت چی شد مادر فرعون میآید موسی علیه السلام را در گهواره‌ای در تابوتی قرار میده در یک ظرفی قرار میده روی دریای روی رود نیل میذارد رود اون جعبه را بر میداره تا اینکه میرود کنار قصر فرعون بعد اونجا بود که خداوند لطفی را در قلب همسر فرعون میذاره در قلب آسیه میذاره و به فرعون خطاب میکند و میگوید لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا او را نکشید موسی را نکشید بچه‌نداش آسیه اومد تقاضا کرد خداوند در قلبش رحم می‌گذاشت لطفی گذاشت اومد از فرعون خواست ای فرعون همه بچه ها را کشتی از ترس از اینکه شاید ملکت تو ازت بگیرن، پادشاهی ازت بگیرن. خب این بچه رو خودمون پرورشش می‌گیم. پرورشش بدیم، بزرگش می‌کنیم. موسی را بگیریم، او را نکشیم. تا اینکه به درد من بخوره، فرزندمون بشه، ما از بی فرزندی نجاست بیابیم. چون ماها میمیریم. بعد بدانی که مردیم حداقل کسانی باشند که ملک ما به آنها تحویل داده بشه. فرعانم به امین تمعنشه است که بزرگم شد پیر شد شاید نتونه امور خودش رو تدبیر بکنه بچرخونه نیاز به فرزند داره بنده هست بنده هیچ وقت نمیتونه بی از خداوند بشه همیشه بندگان نیازمند خدا بودن نفس فرعونم به عنوان یک بشر اونجا هست که احساس نیاز می کند که باید فرزندی داشته باشه و اون حرفش که به قومش زد ما علم من خدایی را جز خودم برای شما نمیبینم این هر فریبی بیش نبود که قوم خودش را گمراه بکنه نگاه بکنیم چطور فرعون نیازمند خدا بود نیازمندیش او را وادار کرد که دشمن خودش اون کسی که ملک و پادشاهیش را قرار نابود بکنه در بالین خودش تربیتش بکنه پرورشش بده بزرگش بکنه موسی را گرفت با تقاضای اون همسرش بزر در قصر خودش بزرگش کرد تا اینکه خداوند بعد از اینکه زمانه گذشت و موسی بزرگ شد خداوند دستور میدهد به موسی ای موسی تو الان از طرف من مأموری که بروی پیش فرعون و با فرعون حرف بزنی و او را دعوت بدهی که از این حرفش کوتاه بیاد از اون ادعای خدایی کوتاه بیاد اون خدا نیست خدا منم خدا او نیست او نباید فرسیده بشه منم که فقط باید فرسیده بشم برو با نرمی موسی بهش دعوت بده باهاش حرف بزن فقول له قولا قوللا له موسا پیش فرعون با نرمی باهاش حرف بزنین تا اینکه هوشیار بشه تا اینکه از عقل خودش استفاده بکنه دانا بشه تا اینکه اون مردم بدبخ را گمراه نکنه بیاید خودش و قوم خودش را نجات بده. این چنین متکبر نباشه اینچینی مغرور به خودش نباشه به ملکش ننازه ولی فرعون حرف موسا را نمیپذیرد خداوندم فعال لما یورید هست اون چیزی که خداوند میخواهد خواهد می شود بلی فرعون استجابت نمی کند خداوندم هشدارهای فراوانی به فرعون میدهد که شاید بر بگرده ولی بر نمیگردد. گرده قصد کشتن موسی می کند قصد کشتری بنی اسرائیل میکند. خداوند دستور میدهد. به موسی که آل بنی اسرائیل را از اونجا از مصر بلند بکنه و بیاد به سرزمین فلسطین ولی فرعان راضی نیست کسانی که بردش بودن خدمتگزارش بودن روزی اونها را وادار میکرد به پرستش خودش راضی نبود که اونها بلند بشن از مصر بیان به فلسطین ولی موسی مأمور از طرف خداوند بنی اسرائیل را برمیدارد و میخواهد از دریا عبور بکنه و بیاد به سرزمین فلسطین خداوند به موسا دستور می‌دهد که با عصای خودش اشاره‌ای بکنه به اون دریا اون دریا دو لبش کنار میروند. یک لبه این طرف و لبه ای دیگر طرفی دیگر از اون طرف هم از پشت سر اونها فرعون میخواهد خواهد با لشکرش اونها را نابود بکنه همراه موسا بنی اسرائیل از زن و مرد از بچه و نوزاد همه بودن همراهش خداوند میخواهد. اونها را نجات بده خداوند است که فعال لمایوریده هست هر که بخواهد می شود موسا می آید از این دریا عبور بکند و مسیر برش حمار می شود میاد از وسط اون دریا میزند که عبور بکند عبور که می کند فرعونم از پشت سرش فکر می کند که راه هموار ولی ولیکن اون راه هموار نبود خداوندی که فعال لمایوریده هست نوشته بود اون چیزی که می خواهد بشود و عاقبت اون, اون تغات و اون،, اون،, اون،, اون کسانی که ظلم در حق بشریت کردن اون کسانی که ادعای خدایی کردن خدا میخواد نشون بده که اونها چطور بندهی ذلیل و خارن خداوند زلت اونها را نشون ما داد کرد؟ وقتی که فران و قوم خودش پارو گذاشتن وسط دریا رسیدن خداوند دلبه آب را به هم و برد و اونها را نابود کرد بله کجاست؟ اون کسی که ادعای خدایی می کرد قدرتت کجاست ای فرعون کجاست اون نیرویی که تو ادعایش می کردی کجاست اون قدرت تو آیا تو قادر بودی خودت را نجات بدی خیر کسی که قادر نیست خودش را نجات بده اون شخص اون شخصی که نیازمند پروردگاره دیگه مستحق پرستش نیست مستحق عبادت نیست خدا میخواد این را ثابت بکنه و بدن فرعون را خداوند نجات داد بدن فرعونش فقط سالم نگه داشت نه خودش فقط بدنش اون بدنش رو گذاشت و همچنانم بدنش هست فرعون تا اینکه درس عبرتی باشه نگاه بکنید این عاقبت اون کسی که بندگی من رو به نیاورد ای بندگان بنده من باشید مالک منم خالق منم رزاق منم از من باید بتلبیید باید سر به سجده من بذارید، باید از من بخواهید دعایتون خالصانه برای من باشه و هیچ وقت نباید سر سرکشی بکنید و بخواهید که حق بندگی خودتو را به نیارید. بدونید ای, بنده ای بندگان خدا، اگر بندگی خودتو را به جا نیارید، خداونده که شما را نابود میکنه و مثل فرعون شما را عقوبت میکند، اگر در این دنیا عقوبتتون نکرد در اون دنیا همراه فرعون محشور خواهی شد و در اونجا خالد مخلط تا عبد ده در جهنم باقی خواهید موند بله این عقوبت خداوند بر کسانی که سرکشی بکنن از دستورات خداوند و خداوندم با این کارش و با این قصهش به ما ثابت کرد که هر کاری که بخواهد همونطور می شود پس بنده خدا باشیم و سر به ذلتش در بیاریم، سر به بندگیش، سر به پرستشش در بیاریم، هر حرفی که بهمون زده، اون چیزی که از همون خواسته، ما انجامش بدیم. و آخر و دعوان الحمدلله رب العالمین، صلی اللہ علی محمد و علی محمد.